سلام و صد سلام به شنونده های عزیز کانال هزار افسان. امیدوارم حالتون خوب باشه با شما هستم با یک داستان دیگه داستان این قسمت دو همسفر یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود یک مردی بود به نام جابر که تو شهر خودشون بیکار بود روزی با خودش فکر میکنه در شهر ما کار کمه بهتر به شهر دیگه ای برم و کاری کنم به خاطر همین یه مقداری نون و پنیر رو چیزای کوچیکی برمی داره و به راه میفته تو راه که میرفته به یه نفر میرسه که از همون راه داشته میرفته وقتی به اون نزدیک میشه به اون سلام میکنه اون مرد هم جواب سلامش رو میده جابر میپرسه اسمت چی و به کجا میری جواب میده اسمم سالمه و برای پیدا کردن کار به شهر دیگه میرم. جابر گفت اتفاقا من هم برای کار به شهر دیگه میرم. حالا که هر دو برای پیدا کردن کار از خونه بیرون اومدیم بیا با هم دست دوستی بدیم و مثل دو تا برادر با هم باشیم. خلاصه پس از چند روز راه رفتن و پرس جو به یه شهری میرسن و کاری پیدا میکنن و مشغول به کار میشن خیلی سفت و سخت. دو سه سال کار میکنن و پولاشون جمع میکنن. بعد تصمیم میگیرن به شهر خودشون برگردن. برن بشه خانواده خودشون. هرچی لازم داشتن خریدن و به طرف خونه رفتن. تو راه برگشتن سالم یه ای میکشه که پولای دوستش رو به چنگ بیاره. به همین دلیل به دوستش میگه بهتره که اینجا از هم جدا بشیم و هر کدوم به راه خودمون بریم. جابر قبول میکنه. از هم خدافزی میکنن و هر یک به راه خودشون میرن. سالم جلوتر میرفته و وقتی که فاصله زیادی از دوستش پیدا میکنه یک جفت کفش نوی رو که تازه خریده بود در میاره و یه لنگه اونو سر راه جابر میذاره و لنگه دیگر رو با صد قدم فاصله جلوتر میندازه و یه گوشه پنهان میشه تا ببینه جابر چکار میکنه. جابر وقتی به لنگ کفش میرسه گفت به به چه کفش قشنگی تازه هم هست خواستانو برداره ولی گفت بلش کن بابا که این کفش تازه است و خیلی قشنگه ولی یه لنگ است یه لنگی به چه درد من میخوره خلاصه کفشو بر نمیداره و به راه خودش ادامه میده صد قدم جلوتر که میره میبینه یه لنگ کفشم اون ور افتاده وقتی کفشو بر میداره نگاه میکنه میبینه اه درست لنگه همون کفش اولیه با خودش گفت بهتره که برگردم و اون لنگه دیگر رو هم بردارم به همین خیال خورجین خودش رو که تمام دارائیش تون بوده تو کنار لنگه کفش میذاره و بر میگرده تو اون یکی لنگه رو بیاره همین که جابر از خورجینش دور میشه سالم میاد و خورجین اونو بر میداره و بلا فاصله و توندی به طرف خونش میره وقتی جابر برمیگرده برمیگردی ببینه ای دل قافل از خرجینش هیچ خبری نیست خیلی ناراحت میشه دو دستی به سرش میزنه کمی که فکر میکنه با خودش میگه کار کار سالمه باید ازش انتقام بگیرم بعد از اون به قصد گرفتن خرجینش راه خونه دوستشو در پیش میگیره اما بشنوی از دوستش سالم وقتی به خونه میرسه پولا رو قایم میکنه و در گوشه دراز میکشه و خودش رو به مردن میزنه و به زنش هم چیزی نمیگه. وقتی جابر به خونه اینا میرسه میبینه که همه دارن گریه و زاری میکنن. فهمید که جریان از چه قراره. پیش زنش بیرو می میگه شوهرت بهترین دوست من بوده. اجازه بده تنهایی کنارش بشینم و کمی گریه کنم. زنم قبول میکنه و خونه رو خلبت میکنه جابر مشی به پهلوی دوستش میزنه و میگه بد جنس من که میدونم تو نمردی و تمام این کلک ها برای اینه که پول منو بالا بکشی اما از اون هیچ جوابی نمیشنره بعد سوزنی رو تو تن اون فرو میکنه و میگه ببینم طاقت اینم داری ولی باز جوابی نمیده انگار که نه انگار زنده است و انگار که ده ساله که مرده جابر گفت پاشو پشو الان میبرن خاکت میکنن و زنده به گور میشی اما باز جوابی نمیشنره. کم کم داشت باورش میشد که اون مرده ولی گفت کور خوندی من از مرده ای تو هم دست نمیکشم خلاصه مردم همه جمع میشن و مرده رو به گورستان میبرن تا که خاکش کنم بالاخره به اون نخه آخر میرسه و مرده رو توی گور میذارن تا خاک روش بریزن سالم هم در گور فکر می کرده خدایا چه غلطی کردم یه کاری بکن کمکی کن که از اینجا نجات پیدا کنم اگه خاک روم بریزن که واقعا زنده به گور میشم از طرفی اگه بیام بیرون با چه رویی نگاه کنم تو صورت دوستم تو همین فکر بود که صدای دوستش رو میشنه که به حاضری میگه این مرد سالها با من دوست سمیمی بوده اگه ممکنه خاک روش نریزی شما هم بریم من میخوام کمی با اون درد دل کنم بعد خودم خاک روش میریزم حاضرین هم به خواسته اینو احترام میذارن و میرن وقتی تنها میشه میگه مرد حسابی این چه کاری بود کردی؟ کم مونده که خاک روت پریزن پاشو دیگه بازی بسه. اگه نشی خودم و دستای خودم خاک میریزم روت. و از مال خودم هم صرف نظر میکنم اما هر چی میگه اثری نداشته هوا تاریک میشه و چشم چشمو دیگه نمیدیده سالم هم که میدید دیگه لحظاتی بیشتر نمونده به پایان عمرش به سر راهی میرسه فکر میکنه اگه زنده باشم با چه رویی توی صورت دوستم نگاه کنم اگه بلند نشم خاک رو میریزن و زنده به گور میشم تو همین فکر بوده که جابر ببینه تو همه جا تاریکیه بلاخره باورش میشه که دوستش مرده بیلو برمی داره تا خاک روی اون بریزه که ناگهان صدای دو نفر رو میشنه گوشاشو تیز میکنه که بهتر بشنوه نگاهش رو به اطراف و این ور و ور میندازه میبینه بله دو نفر مقدار زیادی جواهرات رو دوزیدن و همون نزدیکی روی قبری گذاشتن و میخوام ببینن خودشون تقسیم کنن یکی از اوزو جواهرات رو تقسیم میکرد به این صورت یه جواهر رو جلوی دوستش میذاشه یکی رو جلوی خودش و می گفته این مال تو این مال من، این مال تو، این مال من سالم در حالی که در گور دراز کشیده بوده حرفای رو میشنیده بهتری موقع رو برای زنده شدنش میبینه ناگه اون از جاش میپره و با کفن به طرف اون دو دوز میدوه و میگه پس سهم من کو؟ دوزدار که اون رو با کفن میبینن اونقدر میترسن که یکی از دوزدار میگه بسم الله مرده زنده شده هر از ترس پا به فرار میذرن و پشت سرشونم نگانی نمیکنن. جابر که مات مونده بود و خیلی تعجب کرده بود از دوستش پرسی چی شد؟ تو که مرده بودی؟ چطوری زنده شدی؟ سالم روی دوستش رو میبوسه و میگه دوست عزیزم من قصد بعدی نداشتم فقط میخواستم ثروت تو رو بیشتر کنم بیا تا این جواهراتو رو بین خودمون تقسیم کنیم و به خونه برگردیم. خورجینت هم جاش امنه جابر گفت نامرد من میدونستم که خورجینت منو رو تو دوسیدی. اما چرا سالم گفت اگه من خورجینت رو برنیم داشتم الان تو اینجا نبودی و این جوارات هم گیرم و نمیمد یه جوری توی دلش انگار رو میبخشه و میگه باشه قبول میکنم جابر دوستش رو میبوسه و با همدیگه به خونه برمیگردن و خورجینش میگیره و به طرف خونش برمیگرده خب دوستایی عزیز این داستان رو شنیدید امیدوارم که خوشتون اومده باشه ممنونم که منو تا آخر همراهی کردین خدا نگهدار سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی